حکایت، حاتم تایی را گفتند، از خود بزرگ هممت تر در جهان دیده ای یا شنیده ی، گفت بلی، روزی چهل شطر قربان کرده بودم عمرای عرب را، پس به گوشه صحرای به حاجتی برون رفته بودم، خارکنی را دیدم، پشت فرا هم آورده، گفتمش، به مهمانی حاتم چرا نروی که خلقی بر سمات او گرد آمدهاند گفت هر که نان از عمل خیش خورد مننت حاتم تائی نبرد من او را به همت و جوانمردی از خود برتر دیدم